از کنم که در حقیقت غذر آشغانه است یک شمی هم عارفانه بلکه بیشترش آشغانه غذر خیلی معروفی هم هست و چون پایهاش هم یک اندازه هست اینی که خیلی ضربی هم خوندن خوننده های مختلف هم میخوند از فعالاتن، فعالاتن، فعالات، فعلاتون فعلات فعلات چارتا بهر رمله در حقیقت این هست خیلی خوش آهنگ و پشنگ هم هست چیز اولش که مثلا اول که هیچ مطلبی اینه ای که در پشتن ما هیچ مداره نکنی سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی بعضی ها محابا رو با عوض می نکسن خیال که از حیبت رو اینا بگیره. مهابا در حقیقت اصلش هست محابا تیگرد و تمام این کلماتی که به همین وزنه مثل مداوا، مثل مدارا اینا مسادر با مفعله است و مداوات و مدارات و همثال اینا که اون ته آخرش افتاده در فارسی محفظ شده در حقیق محابا کردن معنی پروا کردن معنی ملاحظه کردن بی محابان کلانکار کرد یعنی بدون هیچ ملاحظه بدون هیچ پروایی محابا یعنی پروای دردمندان بلا زهر حلاحل دارن قصد این قوم خطر باشد هان تا آمد من حق بود که اینو نگاه کردم به برهنگ گویا حلاحل اسم، یه دیونی باشه نمیدونم باید نگاه کنید به اما اون چیزی میدونم این است که زهره حلاحل معتقد بودن که زهری است که به هیچ نه دیگه معالج پذیر نیست و قطعاً اگر کسی مبتلا بشه رفتنی تمام اینه که میگه که دردمندان بلا یعنی اهل امین تصفق و اهل ارکان و اینا که اینا اغلب هم بعضی هاشون که خیلی ارز کنند که بدقلق بودن شیخ احمد جام ازش منقوله که چندین نفر رو چیز کرده گفتیم اصلا تو چی میشی تو چی میشی و نظر بد بهشون در حقیقت کرده و اینا مقتلاش شدن و بددخت شدن و چشدن و این همین اشاره به همینه که میگه که قصد کسی کردن اینجا یعنی سو قصدی طبیعیه قصد این قوم خطر باشد خطر هم به عنی بزرگیه و هم به عنی عرف هم خطر است که میدونی یه بیت از تو کهیل دمنه که لابد دیدیم میگه از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل بر نبندد گر به ترسد از خطر بازار خطر اولی یعنی ریسک و خطر دوم یعنی گونده شدن بزرگ شدن میگه بزرگ شدن از کار ریسک میاد راستم میگه البته کسی که نمیخواد هیچ خطری در زندگی تهدیدش کنه میره برقالی ولی کسی که ما تو سیاست برای کار بر برای براندازی دولت مثلا این بعد سرش هم کف یه وقت میبره، یه وقت هم میوازه اینه که این خطر بعد نتیجهش هم اگه برنده شد قابل ملاحظه است. اینجا خطر معنی ریسکه و قصد هم عرض کردم معنی صوب قصده معنی آزار رسوندن به این قومه اینکه این قوم خطر باشد و زهر حلاهل هم مقصود اون نفسشونه و دعاشونه که بعضی هم میگن این مثلا خیلی خیلی قدیمی است یعنی مثلا در پیش برحمن ها و اینا میگفتن که برحمن اگه چیزی میگفت چیزای هندو اصطلاح اسطلاح روحانی های هندو اگه میگفت که مثلا تو بعد از این نمیدونم یه پانه نداری دیگه تموم شده بود هر شن می گفتن میگفتن مثلا آب نبوده اینطور ما تقصیر نداشتیم و شما به اشتباه بعد میگم این دعایی که من کردم دیگه راهور نداره این اتفاق میاد حالا من برای جبرانه اون میام مثلا فلان کارو میکنم و اون دیگه اتفاق طور تموم شده یینی که اینم همینو میگه که اگر آهی از ساه دردی از سینه صاحب دردی بیرون بیاد مثل زهره رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم کلمه التفات به معنی نگریستن به گوشه چشم و به هر حال آدم کسی رو که دوست نداشته باشه یا دلش نخوادکاری باش باشه داشته باشه نیگاش نمیکنه کنه از. و همینقدر که نیگاه کنه آدم تو صورت یکی نشونه اینه که یا دشمنی خیلی شدیده میخواد بخش کمش یا دوستی حساب کتاب و معشوق و هر حال برای اینکه خود رو نکنه اگرم نگاهی میخواد بکنه باید به یک گوشه چشمی نگاه کنه این از که التفات به معنی نظر لطف معشوق شده به معنی به گوشه چشم گریستن و اینجا هم که خاجه میفرمد که رنج ما رو با یه گوشه چشم میشه برد یعنی میتونی یه التفاتی استفاده کچی که ما و وقتی میشه این کار کرد یه نگاهی نیم نگاهی یه جدگم داره تو اون قذری بود که نه تو اون کلاس بود صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید خوبان در این معامله تقصیر میکنی نیم نظر یا نیم نگاه یعنی نگاه خیلی گذرای کتاهی بود میگه رنجما را که توان برد به یک گوشه چش شرط انصاف نباشد که مدابانه کن شرط انصاف نباشد که مال شیخ عجل سرد. اما از بحر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نباشد ببینید چجور وقتی کلمات سکه میخوره و ساخته میشه این تحکیبا بعد می نفوذ میکنه مداوام که این درمان نگه از همون کلمه دعباست دیده ما چو به امیدتو دریاست چرا به تفرج گذری و لب دریا آمده این دریا رو دعا میکنم منی رودخونه هم میشه گرفت دریا دو معنی داره ایکی است و یکی هم دریا بله در پاکستان هم میگن دریا و سیر دریا و آمود دریا سیحون و جیحون داره. الان الان پاکستانی هم میگن دریا دریا سن. سن و دریا چیز دیگه میگن عرض کنم که حالا این هم چشم و چشم اشکال دو میتونه بگه دریاس یعنی بحر هم اش که میاد پایین میتونه آدم بگه که منزله رودخونه هست و من بیشتر به دلم میچاست که اینجا به معنی رودخونه بگیرم دیده ما چون امید تو دریاس چرا به تفرج گذری بر لب دریا تفرج یعنی وا شدن برج به معنی گوشایشی اینه که تفرج یعنی را رفتن برای این که آدم دلش باشه. این تفری کرد به تفرج گذری بر لب دریانت نقل هر جور که از خلق کریمت کردن قول صاحب قرازان است اینجا در دوشه رو میزنه که از شما یک بیمهریا یک چیزی هم نقل میکنن بعد میگه من یقین دارم که اینو بیخود خود تو حتما این کار رو نمیکنی اینایی که این هر کار رو از, از خورقه کریم تو نقل میکنن اینا صاحب قراز هم و در حقیقت وا میداره طرف رو به اینکه یه یک قدری ملاحظه بود احتمالا شخص معینی هم هست مثل تقریبا تمام غزالای حافظ که حساب و کتاب داره تا به این صورت نبود که دلش در بگیره بوشن خونهش یه غزل بسازه اصلا فکر نمی کنم هرکز در عمرش خاجه این کار کرده بشه این شخص معینی کاملا پیداست نقل هر جو که از خلق کریم هم کردن خلق کریم یعنی خوی بزرگوارانه چون کریم هم دو معنی داره یکی وعنی بخشنده است از کرم و یکی ونی بزرگوار از کرامت اردوش میشه صفت مشبهش میشه کریم از کرامت که باشه یعنی بزرگوار و سادات رو سادات تبا طبع رو که پدرشون و مادرشون سید بود میگفتن کریم و طرفنگ یعنی از هر دو طرف کسانشون پدرانشون بزرگوار اینجا هم خلق کریم که میگه که این ترکیب و حافظ خیلی به کار میبره یعنی اخلاق بزرگان در اخلاق بزرگارانه میگه تمع زفیز کرامت مبر که خلق کریم گناه ببخشد و بر آفشقان ببخشا هی قزل قشنگیز اگر به واقع مشکین که شد دلم شاید به بود خیر زه زختری نمی آفده. چمن خوش از تو هوا دلکش از تو می بیغش کنون به جز دل خوش هیچ در نمی با. با خلق کریم هستش در حافظ نقل هر جور که از خلق کریمت کردند قول صاحب قرازان است که این گفتار حال قراز حتما تو این کار نمی بر تو گر جلوه کند شاهد ما ایزاهه با اینکه تمام عمرتو در ظهر به سر بردی اگر معشوق ما یک جلوه بکنه تو از خدا جزمه ی معشوق تمنا نکنی تا فضا سجده و ابرو یه چون مهرابش خانده ارز کردم که این مهراب رو نمیدونم اینجا گفتن یا نگفتم مرحوم بهروز، زبیه بهروز، دانشمند صاحب نامیست معتقد بوده که مهراب و مهرابه گاهه هفت و مراد این تاخهای قوسی است که آبه به معنی گنبده اصلا این یعنی همین منهنی شکل در کلمه آوج آوج آبست یعنی شهر گنبد داشت سه آوه یعنی سه گنبدان جایی که سه تا گوشه احره سه گنبد و گرمابه همینه گرمابه آبه مخصوصی نیست که آبش گرمه برنی که آب سرد هم توش داره محصول جای گمبدی شکلیست که گرم هست یعنی آبه ببینی گمبدی بعد مرحوم بهروز میگه مهراب و مهرابه این تاغنماهای خوصی منهنی شکل موابط مهری بوده که بعد آمده برای اینکه استدال استدلال میکنه که مهراب باید از لیشه حرب گرفته شده باشه و حرب یعنی جنگ و این اصلا ارتباطی با محل عوادت و این حرفا نده این حرف اگرچه ظاهرش درست به نظر میاد با آدم فکر کنه قایدتاً باید اینجور باشه ولی هیچ سندی که این محطب تأیید کنه در دست نیست بنابراین اگر آدم بخواد به صرف نظریه مرحوم بهروز تسلیم بشه کسانی که مرز دوبله فارسی دارن و فارسی سر نوشتن اینا گرفتاری اصلیشونه اینا زود این چیزها رو قبول میکنن و زود هم مهراب و بایه عبضی میکنن رو خودشون راحت ولی اگه آدم اهل سند و مدرک باشه و دنبال این باشه که واقعا یه چیزی یاد میگیره یا میگه به یه سندی و مدرکی منتکی باشه سندی در دست است برحال مهراب اون است که معمولا در مساجد رو به هست است و امام اونجا میایسته و سقفش مهراب چیز منحنیه و ابروی معشوب رو به او هاشور میکنه و بسیار هم در حافظ به کار مهراب و ابروی تنما با سهرگاهی دست دعا فرارم در گردن آورده است آقا جعفری حالا یه اسم ن یه اسم مهرب در خوزستان خیلی شایع و اینو به حوض می من مهراب فبولی پدر چیزی؟ ولی اون از ق از نسل زهها که گرفتاری اینه که اون از نسل زههای پدر روآبدجد مادری رستن و شاید منصور به هر حال محراب اونجوری هست و در خوزستان یک کسی بود از پورپولیستای صاحبنا محراب شعاروخی خوزستانی هم بود. از اون یاده به هر حال اون هست ولی این که این محراب محراب مسجد اون باشه ارز کردم ما سندی حافظ حافظا سجده به ابروی چون محرابش بر که دعاییز سر صدق جز آنجا نکنیم دیگه تنها جایی که از سر دعا کنی در برابر محراب افروی محشوب خب آقای سفند نگاهی بکنم غزل بعدی بعد هم اول خود یه نگاه بکن یه خوده اینکم که نداری این شکره اینکم بوده بزرگ بار بزرگ بزرگ صفت مشتحه خطر مسترشه، صفت کسی یکی از خیلی خوب هم باز همین یعنی با مختصر نگاهی صد در را به بهش چشم یعنی خیلی نمی‌خواد زحمت بکشید نگاه کوچیکی کردیم درست میشه فعلا تو پاستو یالمی چکادن ابر بهمنی برگ سبوخ ساز و بر جام یکمنی و افتادم در بهر ما و منی افتادم بیار می می تا خلاص بخشدم از مائی و منی اون پیاده پر که علار است در کار باده باش که کارریز کردنی ساری به دست که هم در کمین مطلب، نگاه دار، همین ره که می‌زنید می‌ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت بو. خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی ساقی دو بینی رندان که می‌بده خواب نریز، صوت مقنمی، با. ارز کنم که اینجا نسخه‌های محروم خانداری باید که در پونزد نسخه داشته. بیش از دو تا نیست یکیش نسخه مرحوم خلقهالیه یعنی همون که اساس کار چاپ غزبی نیست یه نسخه دیگه هم هست و یه خورده خیلی مختصرم اختلاف داره و هر حال صبح هست و می میچکد از ابر بهمنی ابر بهمنی عبر ماه بهمن دیگه است. و جاله اصلا چند معنی داره؟ یکیش شپنمه یکیش تگرگه تگرگم میگن جاله و ظاهران اونجا خاجه معنی بارون گرفته این, این،, این گرفتاری رو ما داریم خود بنده دارم در درجه اول و دوستانی که از بنده دارن یاد میگیرن اونا در درجه دفن شاید جاله ده تا معنی داشته باشه که ما به دلیل اینکه به فرهنگ رو جونه میکنیم نمیدونیم باید اون چه در تداغل عام هست یاد میگیریم بنده یه مورد دیگه هم که تگرگه سر کلاس یاد گرفتم ولی باز تنبلی که برم این نگاه کنم و فرهنگ برم معنی دیگه داره یا نه موجب شده که الان اینجا در بمونه جالب میشه که از عبر جالب تگرگه نمیگن میچکه برانه که او مثل سنگ میباره و میزنه این چکیدن مال بار حالا جالب من بارونم هست نیست بازوند نمیدونه برگ سبوخ سازو برگ یعنی واسطوه در اصطلاح نظامی یه ساز داریم یه فرق ساز یعنی سلاحایی که سرباز با همراش باشه برگ یعنی وسایل زندگی سرباز بود قوقومدش چوره آب بخوره حا طول باشه رو شب بخوابید نمیدونم غذاش همراش بوشید اینا سازه چه برگ اون وسایل نظامی که سرنیزه و توپنگونه اینا که باش جنگ کنه اونا ساز برگ سب ما آدمی که دست سنگ و ایناست میگن بی برگ مونده مرد بی برگ نوا را سبوت از جای مگیر پوزه بی دسته چو دیدی به دو دستش بردار برگ یعنی وسایل، برگ سبوب ساز یعنی وسایل شراب سپ رو آماده و جام یکمنی بده ارز کنم برای این که خیلی تعجب نکنید. یه بار ما در تاریخ بیحقی که میخوندین در دوره دکتری البته استاد اونو درس نمیفرمد ولی جز برنامه ما بود و بچه ها باید مشکلات رو از استاد میفرسید و رسیده بودن به جمله ای که روز فلان سلطان مسعود با نمیم کیک و کیک و کیک رفتن باغ کجا و اونجا سلطان مثلا هیپده من شراف بود به نظرم هیپده من هایی که هم باید دانشجو از استاد پرسید که دیبته من شراب میشه یا آدم اصلا بخوره یه روز استاد پرمودنه که تا منش چمنی باشه درست همون جوابی که میرزای جلوه داده بود که میدونید که میزه جلوه یک صوفه بسیار معروفه دوره ناصردین شاهست و یه از این علما و اینا میخواستن اینو کنف کنن و عذیتش کنن نشسته بودندم یه استخت فقیقی عظیمی دحمت در دحمت مثلا بعد یکی از اینا شروع کردی بله جناب میذار شما که بی سوف الهی هستین و در معارف اسلامیت هم بی همتا اینو چنین اینو چنان اینو الهیات و طبیعیات و ریاضیات و اینا از نظر شما گذشته ممکنه لطفی بفرماین و به که این چند تا مثلا پیاله یا چند تا سطل آق میگیره جلوه تحمید که دارم چیزش میکنم تو سه اندونه زیری پاش میذارم گفت که تا سطلش چه سطلی باشه اگه قد این استخم شد یکی اگه نسبش باشد دوتار اگه باشه چهار تا. بعد ارز کنم که خانم لمتون کتابی نوشته نام مالک و زاره در ایران با اینکه حالی یک کتاب کونه است و من خودم شاید سی سال پیش یه نقدی به این نوشتم تو مجد هم کتاب با این حال هر ایرانی واقعا واجبه که این کتاب بخونه اینکه این نخونه هیچی در باره مالک و زاره در ایران نمیدونه ولو اینکه خودش مالک یا زاره بشه. برای که ای خود چند مالکی باشه، مثلا مال گیلانه این اصلا از بلوچستان خبر نداره و به کلی چیز دیگه مال بلوچستانه، یک کلمه از لورستون نمیدونه مال لورستونه، یک کلمه از آذربایجان نمیدونه و این زن، یعنی کاری بوده که باقی هم به نظر غیر ممکن میامده این خانم کرده و خیلی کتابش کتاب مهمی کتابیش که این پنجه ساله اخیر و احتمالاین کتابی به این عظمت نوشته نشده خیلی تا این کتاب چند تا پیوست داره زن نوشه یکیش راجب منه یعنی با عدای وز و افوالش من و شاید 17 تا شاید 20 تا من مختلف با وزنای مختلف دادید و یکیشو که من شاهد بودم شخصا در پاکستان در پاکستان به جای این پاند اینجا به جای پاند یا به دو پاند میگن یک سیزی یک سیزی. بعد یه من چلسی شد شما یک گونی برنج که میخرید شما اصلا هشتاد یا حتی اقل چل میشه یه من من شام مادرش شیش کیلوز من تبریز مادر سه کیلوز اینا منای خیلی معروف مقدار زیاد این خانم باز من نشون داده و بنابراین این که گفته میشه که هید من شراب پرد و فوری ما میبریم رومن تبریز یا اسفانی ها فوری من رومن شاه این درست نیست یا جامع منی که خارج می فرماد این شاید بشه معنی منی جامع بزرگ هم گرفت اما وقتی که اون قرینه های تیبده همان شراف کردن سلطان مصبوبه می بینیم ممکنه که واقعا چیزم نباشه یک منی اون روزگارش در بحر مایومنی ما مایومنی یعنی تکبر خودبینی ای بگه ما ای بگه من ای بگه ما ای بگه من هیچ چیزی دیگه رو ندیدم میگه من تو دریای خودبینی افتادم در بحر ما و افتادم بیار می تا خلاص بخشدم از ما و این می ظاهرا باید میسروفیانه باشه که مراد اون جذبه حقه که اگه او برسه آدم مجزوب میشه فنا میشه از خودش یاد نمیره اصلا می بده تا من از مای و منی. مای و منی با یای مستری یعنی ما بودن و من بودن میگه می بده تا من از ما بودن و من بودن خلاص خون پیاله خور این نظیر روای خیام دیگه ای مفتی شهر از تو پرکارتریم با این همه مستی از تو حوشیارتریم تو خون کسان خورید و ما خون رزان انصاف بده کدام کن خارتریم خون پیاله خور که حلال است خونه در کار باده باز که کاری کردنی این یه آخر کردنی رو بهش میگن یای لیاقت یای لیاقت آخر مستر در میاد راه رفتنی یعنی راهی که به رفتنش میارزه حرف گفتنی یعنی حرفی که قابل گفتنی کار کردنی یعنی کاری که ارزش در آدم انجام اینوش یعنی یای لیاقت البته نوعی از یای نسبته اما معنی لیاقت ساغی به دست باش به دست باش یعنی آماده باش به دام ظلف تو دل مبتلا خیشتن است بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است گرد دست برای مراد خاطر ما به دست باش که خیلی به جای خیشتن است یعنی آماده باش. ساغی به دست باست که قم در کمین ما هست. علاج قم با دست. میگه شیطان قم هرانچه توانت بگو بکن. من ام به باد فروشان پناه هست. میرسیم انشالت مرد به واقعش. ساغی به دست باست که غم در کمین ما هست. نگاه دار همین ره که میزنید. راه به معنی آهنگ و مقام موسیقیه در زم راه زدن یعنی روسی کردن و گرفتن یعنی بستن راهه و در عین حال معصوم عاشقانه داره به معنی از دست بردن دل و دین موقعتی می‌گذشت راه زن دینوده در پی آن آشنا از همه بیگانه شد اینجا حافظ به این معنی هم نظر دست یعنی میگه که همین راه همین جور که راه دین و دل ما رو داری میزنی همین جور همین جور ادامه بده یا همین آهنگ که میزنی همینجا همونو ادامه بده عوضش نکن میده که سر به گوش من آورد چنگو گفت خوش بود زران بشنو از این پیر منهنی بشنو اینجا نه قبول کن توی چیز نظامی بود که که چیز کرد. گوش کردم ولی نش نشنیدم به گوش رسیدن یه چیز شنیدن یه چیز دیگه شنیدن معنی قبول کردنم هست اینجا پشت بگذاران که خوشنه بشنو از این پیر منهنی یعنی قبول کن از من چنگ انحنا داره که می کنید مثل آدمیش که گوز کرده و سرش چیز ساقی به بینیازی رندان بالا اون نسخه زه هست به بینیازی یزدان ساقی ها فرق نمی کنید به بینیازی رندان که می بده تا بشنویز سکت مغنی هوولغنی هوولغنی یعنی خداوند دو باند بنیازی. اون تو هست. اشکالش اینه که چه چرخ. با هر حال با هر دوست نمیدم. سعی کنم بیشتر بدهد تونمش می میکنم رابط. در اصطلاح مشایخ اصفر دین باید می اصطلاح تقریبا هیچ چیزینی فقط ولی یک کلمه پدیده اصطلاح یعنی در خداوند فنا بشه مثل منصور حلاج حسین بن منصور حلاج وقتی که وقتی می گفت نه اینکه می گفت من خداام می گفت منصوری در میون نیست منصور پانی شده در ذات هم استرام آمیدهش، آمیدهش، آمیدهش، بله، بله،, بله. گم شدن و بله قناه یکی نیازی بود؟ یک شکل، دومن، یک شکل دومن یک دو. بله. اونم، اونم فهمون حالا من نمیدونم دونم ریشش راید ایکی پین و نونو واپ باشه یکی پین و یه باشه اونو باید فرهنگ دارم ممکنه هست همون یه ریشه باشی و دو معنی داشته که به خودی با هم فرد موسیقی هم همون کدوم؟ نداره دوست نه شاید نه تحلص چرا شاید باشه باشه, باشه. من نمیدونم درست ولی احتمالاً باش خب نوش کن جام شراب یکمنی تا بدان بی خقم از دل برکنی دل گشاده دار چون جام شراب سر گرفته چند چون خم دنی چون جام بیخودی رتلی کشی کم زنی از پیشتان لاف منی سنگ سان شو در قدم نی هم چو ابر جوملر رنگامیزی و تردامنی دل به می در بند تا مردان وار گردن سالو تقوا بشکنی کیز و جهدی کن حافظ تا مگر پیشتم در پای محشور کنم این غزل سه نسخه بیشتر از نسخه های معنیم خانداری سه نسخه بیشتر نبوده یه نسخهش نسخه در حال خلقهالی غزل هم درصد آرفانه است باز این جام شراب یک منی نشونه اینه که موسیقید این که مرادش همون وز میده نوش کن جام شراب یکمینی تا بدان یعنی با اون جام شراب بی غم از دل برکنی بی یعنی ریشه است. ریشه غمو از دلت بکنی دل گشاده دار چون جام شراب بارها حافظ جام دهنش باز دید بارها اینو چیز کرده که جام میزنه خنده میزنه خنده یه جام می و زلطه گره گیره. یا مثلا میگه که با دل خونین لب خندان بیاورد همچون جام جام تو شرابی که سرخه مثل خون ولی لبش پرخنده هست یعنی بازه کنه دل گشاده دار چون جام شراب سر گرفته چند چون خم دنی، دن به معنی شراب شراب رو وقتی میداختن بعد از اینکه که تخمیل میشد و جامی افزنی، الکول میشد کاملا و قندش بدل و الکول میشد و حاضر میشد سرش گر میگیره. به خشتی میذاشتن و با گل میخوشوندن برای اینکه کاملا غیرقابلی نفوذ باشن برای اگر هوا در اون نفوز میکرد شرابات تبدیل سرکه می می رو سرکه میشودن هم به هوا نباید بگیرد خون شراب بعد از اینکه درست شد جوشش برو میشه است و تموم شد باید درش ببندم نفتن همینجوری که الان در کارخونهای شرابتازی بعض این شراب تصویر کردن و از تو خون رو می‌بندن به طوری که هوا نره و حتی با تمام این پیشمینی‌ها اگر مدت زیادی شما شیشه شراب راست بذاریم اون هواش بالا باشه هوا باز نفوذ می‌کنه و تعم شراب تغییر می‌کنه باید بخوابونینش که شراب حلوی چپنبه باشه و نگذاره که هوا نفوذ کنه اگه بالا بزاریم کم کم پش میشه از لاش هوا میاد خراب اینه که سر خم رو و خیلی این مزمون زیاده ساهب میگه که جوش می خشت اگر از در صحبا برداشت سقف این می‌کده را جوش من از جا برداشت این نشونه این که خشت می‌ذاشتم سر خم بل گشاده دار چون جام شراب سر گرفته چند چون خم دنی خم شراب چون ز جام خودی رتلی کشی یعنی همون شراب ارفانی رتل به ونی پیمانه است البته پیمانه معروفی هست که هنوزم در کشورهای عربی بهش میگن رتل ولی به طور کلی رت یعنی پیمانه و اونم هم مثل همین من خود ما در جاهای مختلف تغییر کرده همینجه گلن امریکا با گلن انگلیس فرق داره. بذار <تصفيق> چون زجامت جام بی خودی رتلی کشی کم زنی از خیشتن لاف منی باز منی همون منی میگه وقتی از خودت بی خود شدی بله دیگه من یادت نمیاد دیگه سان شو در قدم بله بی خودی اونجا معلوم بی نه بی خودی یعنی فراموش کردن خود سنگسان چه در قدم یعنی مثل سنگ و زیر پا در یک رنگ باشه و افتاده باشه در هایی سنگسان چه در قدم نیه همچو ابر بالاست اون رو آسمونه جمله رنگ آمیزی و تردامنی تردامنی عبری که مشخصه اصلا خودش بخاره و رنگ هم هم میشه خود ابر رو گرفت که در نتیجه تابش آفتاب. را و, و بار و تراکم یا رقیق بودن ابر رنگاش فرض میکنه یا میشه گفت به علت اون بارونی که می‌ریزه روی زمین رنگ‌آمیزی می‌کنه که گل‌های مختلف در با رنگ رنگا. اون اولی البته بهتره. سنگسان سان شوق در قدم نی هم جو ابر جمله رنگا مثل ابر نباشه که سرتاپات رنگ‌آمیزی و رنگ‌آمیزی منی حق باشه. رنگ آمیزی، هنوزم هنوزم میگن که رو رنگ کرد کلان کسی <تصفيق> یا آدمایی که کلا بردن از مردم ساده دل ببخشین، خیلی عوض میخوام میگم، خررنگ کنه <تصفيق> بلی ف... یکی از دوستان ما میگفتش که آماده بود یک کسی تصویر آمدس بود، خیلی داشت ماده بود که به سلح عظیم محبه خره و خیلی خیلی زرنگ خوب برو په کار من جون، سال خودم. گنجشک رو رنگ میکنم جای قناری و مردم میکنشم تو حالا ما قناری رو جای گنجشک که من بخرید ف... اینو گفت و ما شنیدیم و یادم موندهنیم اما من دیدم در پاکستان گنجیشگاه رو رنگ میکنند میرم بازار و ف... البته به قیمت ارزمون میکوشند رنگ میکنند زردشون میکنند گنجیشگاه رو میکنند در <میدران> اصل خب اون بعضی مشروع، ولی این نه جای قناری می‌خواد باشه. اون این این این این این خیلی قدیمیه در ایران در کتاب ابو مسلم نامه ایار ابو مسلم شخصی به نام زولابی ظاهرا زولاب اسم یه جای و معروف زولاوی خردوز که میگه که کار من پیش از اینکه و ابو مسلم به فیبندن و رو بوشم کار من این بود که خرار رو میدوزیدم رنگ می‌کردم می‌وردم میفرختم سیار سفید سیفید میکرده، سیفید و قرمز میکرده میورده، بازار میفرخته یه مدتی معلوم میشته که رنگش و. یار کی رنگ اون بله بله مستری نه نه نه طلب می در بند تا مردان وار گردن سالوس و تقوا بشکنیم سالوس به معنی ریا وقتی آقای سفن قرار رو دوام بگه که ما راجع به ریا حرف بزنیم و هم اون یادش افتن ما حالا موقعش ده، چقدر از وقتم اون دیگه من منصف ساعت هم نایی خیلی پس بیا رو بعد رو جوش حرف میزنم چون حرف نسبتا مفصل داره خیلن یه دقیقه رو هم دیگه بگرشیم مردانه بار، مردانه بار، مردانه بار. بله، مردانه خودش مردانه بار بله. حافظی <تصفيق> ارز کنم که ونده راجع به ریا وعده کرده که هر دوی زنم و الان میخوام وعده رو چیز کنم اگر خیلی علاقه من باشیم این کتابی داره غزالی امام محمد غزالی به نام احیاء و علوم دین و مرحوم استاد ما وقتی ما دانشجوی روی دکتری بودیم و هنوز پرجمه فارسی یا علوم الدین منتشر نشده بود پیشون در مورد متن عربیش میپرمودن که اگر شما احیای غزاری رو نخونده باشید هیچ نخوندید انقدر این کتاب مهمی در زمنم درست که این مقدارش مربوط علوم دینی سالی در اونجا به حد اقل اکتفا کرده یعنی گفته که یه مقدار زیادی از این کارهایی که این آدمای های به صلاح یعنی آدمای های مقدس میکنن اینا بی خودی و قرآی کردن یعنی نشون دادن زهد خشک و ایناست. و عبادت انقدر ترتیبش انقدر این چهار جز داره این کتاب یه جزش عبادات یه جزش معاملات یه جزش مهلکات، یه جزش منجیات منجیات عبادات رابطه خلق با خدا معاملات رابطه مردم با هم در مورد کارهای مختلف در مورد معامله کردن در مورد اجاره دادن بعد چیزایی که نامشگوه درست نیست این مسائل بحث میکنه دو جز سه چهارم خیلی خیلی مهمه روب سه مهلکات یعنی اخلاق ناپسند و روب چهارمش منجیات یعنی اخلاق پسند منطقا وقتی اینگه اخلاق ناپسند نمیره که حرف بزنه که مثلا فرسون که دروگوی دروگوی دشمن خدا هست میبرن تو جهنم پدر آدم در میارن نمیدون از یه نمیزنه ایچه میره ریشه این رو جستجوم میکنه از روانی که این آدم چه را اصلا برو سایر مسایر و به قدری این کنجکابه و به قدری فرو میره از این جمجمای آدم رو سپراک میکنه میره اون تو ببینه چه میذره که گاهی آدم روش از سرش میکنه اصلا معبود میشه که چطور ممکنی آدمی تا این حد کنجکاب و ریا اونجا جز محلکات رو و, و مفصلاً راجع بهش بحث کرده چهار جزعه احیا علوم دین در قرن هفتم هجری به وسیله شخصی بنامه مؤید دین خارزنی ترجمه شده به فارسی فارسی نسبتاً ساده دلیل ساده بودانش هم این است که همیشه کتاب های علمی به طور کلی و نصر ساده نمیشته میشته. هیچ وقت کتاب که جنبه علمی داشته درش صنعتگری به کار نمیبردن صنعت و کتاب های خلومبه صنعتگری به کار نمیبردن صنعت و کتاب های کتابای عدبی است و حد اکثرش تاریخ و میگه که من این تاریخ رو کردن کردم برای دادن فضل کمال خودم یعنی این وسیله ایست با میکنه چون مدارم چه دستی درم من در عربیت و عدبیت این عربیت. ولی مطلقای کتاب علمی این طور است این معاید دین خارزدی احیار ترجمه کرده و مرحوم حسین خدیب جمع هر چار جلد است کرده و بنیاد فرهنگ ایرانم چاپش کرده در دوره رژیم گذشته و بعد از انقلاب هم شاید ده بار شاید هفتش بار نمیدونم چند بار این کتاب تجید شخص اول و منم باز میگم که اگر رو نخونده باشید هیچ نخونده و میگم که غزدالی آدمیست ما اینکه که و سال بیشتر عمر نکرد ا فکر کنید که در اون روزگار که با قاچیر باید از این شهر اون شهر رفت این چقدر وقت باشم صرف سفر شده، و صرف فربختی نه، چقدرش مونده برای تحصیل؟ چقدرش مونده برای تعلیف و چقدرش مونده برای ریاضت کشتن برای اینکه وسط های کار ناشناس از دانشگاه پاریس و میگم پاریس از نظامیه برداد رفت اییرون؟ که نیانده اونبالش نگیرم بیارنش دوباره باز در نظامی تحجیز کن رفت در همون مسجد اقسا که در خاک پلسطین اونجا نشست به ریاضت و اعتقاف و مثلا صبح پاشه مسجد جارو کنه و از این کارا و اون خودمینی ایناشو شکست برای اینکه هم نشین قلیته بود و خیلی آدم جاسنگین مهمی بود ولی احساس کرده که اینا رضای خاطر بهش نمیده سعی کرد همین رو و کار آسونی به هیچ رجمی نیست و رفت تا آخرین کتابش این احیاس پشتبختانه الان فارسی است. ولی اگر بازم براتون سخته خود غزالی این کتاب خلاصه کرده به نام کیمیای سعادت کیمیای سعادت هم دو تا چاپ ازش در دسته یکی چاپ استاد احمد آرامه که از دوره پهلوی اول این کتاب چاپ کرده وقتی که خیلی جمعون بوده کتاب ناقصه خیلی خوب نیست یه چاپ بهتری کرده از اون باز حسین خدیب جم کیمیای سعادت در دو جد غزداری خودش میگه که من احیاری که نوشتم بعد یه گروهی گفتن که یا آقای کاش که چه این فارسی بود ما میتونیم استفاده کنیم خلاصه اون کتاب رو من فارسی نوشتم ولی الان کاملش هم به فارسی هست و به خصوص در اون جاهایی که از بعد و صفات خوب بحث میکنه حیرتاوره حالا من یه نمونه کوچیکشو، که اون چه به یادم مونده البته برای تو سال ها که ریا عبارت از کاری است که آدم برای خوشایند خلق وقتی در حضور مردم اونو یک خود چرکترش مثلا نماز میخونه نماز رو ترچست میخونه وقتی تنها باشه زود کلاکش میکنه این وقتی اینه یکی دو تا دارن نگاه میکنن شروع میکنه به اینکه اینا بل از ظالینش رو کنه و با آده و ترتیب برای که مردم میگن بحبه آدم مقدسی اه. چه نماز با حضور طلب بچه میکنه این ریاض و میگه این ریا شرک خفیه شرک پنهان. شما وقتی که برای خاطر آقای زولپنون که اینجا نشستن نمازتون رو طول میدیم این معنیش که آقای زولپنون شریک خدا گرفتیم اینو برای خدا این نماز رو اتجاب گری ولی برای خوش ایشون یه خود روغن رو اینا بهش میزنی برای که ایشون بگه به برم این کار شرک است و هیچ کاری رو هیچ گناهی رو به اندازه ریا ازش بد نگفتن در اسمان و ارز کردن میگن شیر که خودست و اون وقت انواع اقسام ریا رو میگه و میگه که از کجا سرچشمه میگیره آدمایی که محتلبن میخوان مردم دار باشن اینا و توانایی طاعت سمیمی درست رو ندارن اینا قالبا میگفتن تو کار ریا کسانی که مردم فریدی میخوان بکنن بعد میگه اینا ریاهای های آشباره و کاملا پیداست ولی ریا گاهی به قدری سخته که از رد پای مرچه روی سنگ خارا در شب تار دیدنش مشکل کرد و خود شخص سالها یک کاری رو میکنه و سمیمانه خودش که یال میکنه که این کار رو صرف محصر خدا ولی بعد یه دفعه یه وصلی پیش میاد که این متوجه میشه خیلی ایداده بیدار این همه این سال یا رو بیا و خودش توجه نشه. میگه مثلا اگر یه آدمی آدم خوبی باشه خیلی مردم بخواد خدمت رو مردم بکنه و از دینش مرتب باشه، آزارش به کسی نرسه و سعی کنه این کار رو بکنه همهش رو و فکرم بکنه که من اینا رو فقط برای رضای خدا این کار رو انجام میدن کار ولی یه روز که رفت توی مجلسی و مردم جلو پاش بلند نشدن تحبیلش نگرفتن و اونجا به اصطلاح اونطوری که باید ازش استحبال نکردن در دلش رنجش پیده میشه که عجب مردم بیمعرفتی هستن دبیین اصلا ما رو هیچ انگار نه انگار که کسی از اومده اینجا نه سلامی نه علیفی نه کسی چیزی نه میرنجه در دلش میگه اگر در دلش رنجش شد در این باب این نشونه اینه که اون کار کرده داشته میکرده یه چاشنی ریا پوش هست وگر نه چه طلبی از مردم داره اصلا چکار کار مردم داره میخوان تحبیلش می‌گیرن تا نگیرن بنابراین سال‌ها می‌گذره تا این یه دفعه متوجه بودش که ای بابا این همه مدت این کاری که می‌کرده یک گوشش هم منتظر این بوده که مردم قدر بشناسن و جلو پاش بلند شدن و دست جماعت کنن و نکردن دل میگه از این پنهان طرف است یک کسی میاد کار خوب میکنه، کار خیر میکنه عمرشو رو وقت به این کارهایت میکوم میکنه وقت میکنه، میره پول جمع میکنه برای صدقه، برای خیرات، برای مبرات نماز، دعا، همه چی، همه چی، همه چی و باز فکر میکنه که صرف این کارها برای رزرو کده اما اگر یک کس دیگری بیاد عین این, این کارو انجام بده که اونم لاغوت برای رضای خداست این بابا ممکنه تو دلش دلتنگ بشه بگی بیا آقای سفندم حالا آمده دوکون والا دوکون ما آقاک <تصفيق> میگه این باز ریاست و نشون آزمایش هم اینه که اگر کسی آمد این کار کرد اگر این خوشحال شد که الحمدالله یک کس دیگه هم آمده این کار رو داره انجام میده ای تایی دلش خوشحال شد معلوم میشه کارش صرف برای رضای خدا بود اما اگه تایی دلش دلتنگ شد پیداست که این یه مقداری و هر حال توقع از مردم داشته و اینا ریاه های خفیست که گاهی آدم بهش پیله میبره و الان شما فکر کنید که در اون روزگار آدمی بنشینه و با این دقت و به این ترتیب این جزئیات این مسائل و بیرون بکشه خیلی دقیق تر از این که من گفتم دونتونه شد این چه مغزی و قضالی آدم است که در اسلام در تمام اسلام اما از شیعه و سنی، این بزرگترین تأثیر رو داشت. یعنی هیچ کس پیش از غزدادی یا بعد از غزدادی به اندازه او روی تمام علمای اسلام و فلاسفه اسلام و همه اینا تأثیر نداشت. با این گاهی آدمی با این مغز رو آدم حیرت میکنه که گاهی یه چیزایی ازش میبینه که نه اون رسوب و آخوندی اون تیزه نشند هست بیهقی تو تاریخش می که حالا به حقی آدم میرزه بینیویس اداره جاتی بوده قلمی داشته، قلم خوبی داشته ولی کارش میرزه بینیویسی تو دفتر سلطان محمود بوده دیگه شاگرد بونه اصر مشتان بوده یعنی رئیسش بونه اصر مشتان بوده این هم عضو دبیر خونه محمود این آدم میگه که من تاریخ می و این مطالبی که برای شب خواهیدن و قسط گفتن خوبه نمیخواه میدیسن چنانکه که احمقی هنگامه گیرد یعنی یه مردی معرکت بگیره و بگه که ما رفتیم و یه روزی و سوار کشتی شدیم و رفتیم در یه ای و بعد میتونی پیاده شدیم و رفتیم تو اون جزیره و گردش کردیم و بعد دوستان که دیگیوار بذارن و آشی بفزن و آتیش کردن و دیدو گذاشتن روش یه وقتی دیدیم که این جزیره در جنبش اومد و رفت زیر آب و معلوم شد که این جزیره ماهی بوده اینو به حقیق قبول نمی میگه اینا از این هرپاییست که خواب میاره برای بچه ها و پیر زن ها و اینا هرپای مزخرف ولی قزدالی عین هم اینه در باب ستون الهی که میگه میگه ماهی هست که میاد و مردم میرن عواز جزیره روش رو میشینن و میگردن این فکر نکرده که اصلا همشیزی امکان داره یعنی میشه که باشه یا نه به صرف خبری که دادن که مثلا یک جمعه ماهی افتاده بوده که از یک چشمش که میرفتی تو و تا از اون چشمش گشت بیرون مثلا یه هفته را بود. یا مثلا چند مایل را بود. حالا درست نمید اینا رو غزالی با اون ذهنه به اون تیزی گاهی متوجه نیشد و مایه حیرته در حالی که آدم خیلی خیلی ساده تری صد درجه ساده تر از غزالی مثل بهی حقی متوجه شده و ذهنشی نیشده صورت این چیزو این کتاب بگیرید درباره تمام استفاده دیگه به خصوص درباره باره خیلی مطلب مفصله تر از این که من گفتن بخونین و ببینین و شما هم در تعجب واقعا با آن شریک میشین این در چهارسد و دنیا آمده در پونسد و پنجه ها مرده من کتاب غزارین و سکیمی های سعادت شد احمد آخرون رو سه چهار و ولی پریشان بودشم که فرموزی خب یه جنبه های داره بود یه جایی از همون امام خمینی رو دید. بله اینا رو دارن متاسفان خب دیگه اینا چیزهاییست که متاسفانه مستنده به اسناد دینی و کسی که افتادتون راه راهی نداره جز این که یه قسمتی از اینا رو قبول چاره نداره و گرفتاریایی دیگه هم داشته مثلا میگه این عروض و صده رو باید به کلی از بین ببرن همین تصوری که آخونده دارن همه آقای خلفالی معروف چیزی که می‌نویسه، تاریخ قمری میذاره خلی تا اینجاش مسلمان دور مرگش تاریخ قمری بعد برای تاریخ شمسیش میلادی استفاده می‌گه <تصفيق> مثل ممالک عربی، ممالک عربی، مثل عربستان سعودی تاریخ قمری رو میذاره ولی چون تاریخ قمری تاریخ درست و طبیعت به نیست یعنی سال حیبی نیست، سال قمری که سال گردش قمره برای سال شمسیش میلادی میذاریم عربستان سوری ولی ما از همون مبدأ هجرت پیغمبر سال شمسی داریم اتفاقا اینو برای هجرت دواریوش و خشه آرشای که نزشتیم که از همون روزی که رسول اکرم هجرت فرمودن از مکه و مدینه همون روز ما تاریخ شمسی گرفتیم شده ۱۳۷۴ سال اینو به پر نداره؟ انقدر ذهن اینا متحجره با. بعدی میگه که اون کار رو بعد چیز بکنن جشن صدر رو باید به کلی بر بندازن حتی این چیزایی که بچه‌ها میگیرن سوت سوتکونه اینا هم چیزا اینا که برای خوشحالی مربوطه به این جشنا اینا باید این رو از بین ببرن و طوری بشه که اصلاً اثری ازش باقی نمونه بعد میگه که بعضیا گفتن که در این روز روزه بدارن اون کارا درست نیست اصلاً باید پوری بکنن که به کلی محو بشه و ما دیدیم که ایشون اشتباه فرمودن بسیار چیزا محو شده ولی نوروز و صدر و سرجاش خب از جور چیزا داشته ولی این مانعه طول جمع نیست با اون که این آدم رفته پیش خودش فلسفه خونده شخصا بدون معلم و کتاب مقاصد و الفلسفه نوشته که مثل این که دوام میکنم دکتر خزائلی هم ترجمش کرده به فارس مقاس دول فلسفه رو نوشته برای اینکه بگه که من فلسفه رو بلدم خیال نکنین که اگه به ایراد میگیرم به فلسفه خودم وارد گیستم و در نتیجه جهل فلسفه با اونا دشمنی می کنم بعد کتاب توافض دول فلسفه رو نوشته یعنی لغزش فلسفه و بزرگترین ضربه ای که فلسفه زده شد در سراسر اسلام این کتاب توافض قضاید یعنی آدم فوق العاده معصده بود بگذریم بگذاریم از این مطلب کتاب قضایی اغلبش جالب و توش خیلی خیلی مطلب هست یک کتابی داره به نام آقای همایی تصدی کردن راجب سیاست و ایناست چی های نورد؟ علا زیان نه نه یادم میاد میگم الان <تصفيق> کتابی دیگه داره بنامه فضای هل باطنیه عربی البته که رد بر اسماییی است. و باز اطلاعات خیلی خیلی مهم جالبی این کتاب هست که یک وقتی من مقاله خیلی مفصلی نوشتم در ایران نامه پنج صفحه مروری بر فضای هل باطنگی قذالی و با همون وقت و قدری تحت تحصیل بودن که مخواستم اون رو چاپ بکنم یعنی ترجمه کنم چاپ بکنم متاسفانه که حالا مساعد نیست اگر فرصت کردم قصد دارم این کار واقعا بکنم این کتاب ها مهم نیست کنم که این قصه ای اون کتاب سیاسیه یعنی کتاب سیاست قذالی هم قصه خیلی است معلوم قذمینی می نویسه که من رفته بودم گشته بودم خیلی زیاد به کتابخانه‌های مختلف و بعد دیدم که هیچ نامونشانی از این کتاب نسخه ای از این کتاب تا فارسی غزالی نیست و بعد آمده بودم نشسته بودم و تو پیشم نوشتم که من رفتم و دیدم و معلومه غزینم خیلی با آواتا بحث می‌زنه و جنم الوجوه به هیچ وجه به هیچ شوری نگرا همه جواهرتان که من گشتن این کتاب از بین رفت نیست و, چنین و چنان چنان میگه و میگه این پیش رو نوشتم گذاشتم کنار برد صبح پسچوم و یه بسته به دست من بحثه رو کردم دیدم که این کتاب همون کتاب سیاسی قزدالیه که آقای همایی چاپ کردن و اون وقتی که بنده محققه رو که خودش رو فطوریته میدونه و اهمتلوبه هم داره وردشته من رو نوشته در همون آن هزاران نسخه چاپی از این کتاب پخش شده در مملکت و من از این خبر نیشستم اون چیزی نوشتن حالا اسمش یادم میاد بتونیم قلب میدربن تا مردان بار، گردن سالوس و تقوی بشکنیم البته اگه درست باشه نمیخواد لازم نیست گردنشو بشکنیم اما تقوام از اون چیزایی که خیلی ریاور میداره که آدم تظاهر به این بکنه که پرهیز می‌کنه از بسیاری مسائل این سازه این راه تظاهر و ریاکاریه اینشون که اون تقوی دروفین رو میده در حیرت خیز و جهتی کن حافظ تا مگر خیشتن در پای مرشوع قفت کنیم توضیحی که از بادی کهان دومنی فراغتی و چتابی یه گوشه چمنی من این مقام به دنیا و آخرت نه اگر چه در قیم افتند هر دمن هرکه که هر کنج قناعت به گنج دنیا داد دروغ یوسف مصری کمترین کم ترین سمنی. یا که فسحت این کار, کار، پانه کم, کم نشود به زخت هم چطوی یا به فست هم چمنی. ببین در نه جا نقش بندیه, بندیه که کسی یاد ندارد چین زمانی زمن زمنی. باد حواتست می توان دیدن در این سمن که گلی بوده است یا سمنی. از این سمون که بر ترک بوستان بگذشت بو عجب که بوی گلی هست رنگ یا سمنی به صبر کوش ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگیهی به دست احرمنی نزاج درد طبخ شد در این بلا حافظ تجاست فکر حکی و رای برخمان برخمان نسخه های متعدد داره غذب خیلی خوبی هم هست ارز کنم که عجیب من این غزه رو در حافظه مطلعش رو دارم دویار زیرک رو از باده رو هنده بونم مرحوم خوانداره اینجور که هفت نسخه دویار زیرک و نه نسخه هم کل نسخه هاش چیز دو نسخه رو نقل دو نسخه رو که نازک بود ترجیح داده به هفت نسخه دیگه و من نمیدونم چرا. چه برای اینکه خود مرحوم خاندردی میگه که من هیچ یک کلمه از خودم نه افزودم نه کم کردم در اینجا و در بیشتر موارد جز در موارد بسیار نادر نقل اکثریت نصفه ها رو قبول کردم اینجا من از روح و استاد معذرت میخوام استاد خود من بودن ولی من زیرک و یعنی نازک رو انقدر بهتر از دیرک نمیدنم که با دو نسخه برداریم و بذاریم دویار نازک جان نازک رو سای بله همین <تصفح> میخواستم اتفاقاً همینو بگم که تازه هر تاشون که نازک نمیشه باشن یکی باید کلوف باشی بعد بله. حالا به هر حال من اینو می‌خونم. بعد دویار نازک و از باغده کوهند و یا کتاب و کتابی و گوشه چمنی من این مقام به دنیا و آخرت ندهم اگرچه در په مختند هردم انجمنی. که هر که کنج قناعت به گنج دنیا داد فروخ یوسف مصری به کمترین سمنی بیا که این کار خانه کم نشود به زهده همچو تویی یا به فست همچو منی ببین در آینه جام نقش غیر که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن این چمن که گلی بوده است یا سمنی از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که بوگ گلی هست و رنگ یا سمنی. به صبر کشت و ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی مزاج در تبه شد در این فلاح حافظ کجاست فکر حکیمی و راوی برمنی ارز کنم که متاسفانه کاج حافظ آخر زندگی خیلی بدی داشت یعنی در دورانی زیست میکرده دوران خیلی خیلی بدی تا شاه شجاع بوده و از حافظ روابطش با شاه که خیلی خوب بوده او هم یه 20 بیست, بیست و چند سالی فرمون روا بوده و شیراز در آرامش و آسایش به سر می برده و آشروب و انقلاب و آدم پرشی رو بعد از مرگ شاه شجا هم که معمولا انتفاق می افته و خواستاران سلطنت می به جون همدیگه و یک وضع بسیار بدی به وجود میارم. من در تاریخ اسراحافظ خوندم که تیمور همین وقتا میاد به شیراز و یکی از این پادشاهان احتمالا شاه شجاع احتمالا توصیه میکنه و بچه ها و بازماندگانشو میگه من اینا رو به شما سفردم شما بزرگتر نه حجودی میکنیم اینا رو نگهداری بکنیم و ما از طبعیت و اینا حرفی نداریم و نخواسته همون کاری که عطابک عبو وکر در دوره مغول کرد به شیراز رو نگه داشت از حجوم به حمله مغول اینم اینجا نظر آسیف تیمور گرسه ولی خود اینا چندتا با هم دیگه به هم زادن و دعوای ارز کنم که ناراحتی تولید کردن اینا و یکیشون که شجاعت و جلادت بسیار بسیار برابونی داشت شاه منصور که اون قصیده معروف جوزا سهرنها تمایل برابرم یعنی غلام شاه هم رو در معت همین شاه منصور میگه منصور بن مزفر غازیست هرز من و از این خجست نام، فرعدا چی چی هم؟ مزفر, مزفر. مزفر محمد مزفری است مبارز الدین بنابراین شاه منصور میشه برادر شاه شجا تا شاه شجا بوده هیچ گردن کشینا نمی کن ولی بعد که تیمور میاد جنگ بسیار جانانه می کنه. فوق العاده شجاعت از خودش پروز میده بسیار و اده زیادی رو میکشه و جنگی مفصلی و تیمور کاش من یه همچون کسری یه همچون شجاعتی از خودش بروز. برای باقی دیگه هم که هر که مونده بودن همه اینا رو تیمور میده به دم تیخ و کلکشون رو میکنه آن مزفره در حال این غزل در اون روزگار تیجای بعد از مرگ شاه ش ساخته این است که می گوید که من اگر یک کوچه‌ای باشم دو یار باشه باشم چه باشه فراغتی باشم کتاب باشم گوشه چمنی باشه این مقام به دنیا و آخرت نمی‌کند دو یار زیدارک و یا دو یار و از باده كهندمانی فراغتی و کتاب و بوشه چمنی من این مقام به دنیا و آخرت ندهم اگر چه در پیمختن هر دم روشن. روشنی که در نسخه های دیگه اونایی که من در حفظ دارم این دوتا به هم ارتباط نداره این دوتا بهید یعنی بیت که خوندم با بیتی که میخوام به اینا وسیله این که مربوط میشه ولی اونجوری که من در حفظ دارم بوده هر آن که کنج قناعت گنج دنیا داد الاخر که ارتباط این دوتا به هم قطع میشه ولی بهتر به نظر من اینه گوه این که فقط دو نسخه و ایک نسخه محروم غزوینیست هران که داره ولی این که هر کم یعیبش این است که دوتا که پوستر هم آمده و خیلی زیبا نیست بعد تنافر حروف داره اصطلاح یا تنافر. تنافر حروف داره ارز کنم که به همین دلیلم احتمالا چون سایه میگفتش که به نظر من نسخه خلقالی این نسخه ای که اساس چاپ محروم غزوینی بوده تاج نظرات حافظ رو در بر داره. هر حال حالا به این صورت که اینجا هست ما میگیم میگه من این مقام رو به دنیا آخرت نمیدم اگر چه هر دم آنجوانیم در پیمانم برای اینکه هر که کنج قناعت رو به گنج دنیا داد یعنی کنج قناعت و فروخت و گنج دنیا رو گرفت یوسف مصری رو به کمترین قیمتی فروخت. میدونید که یوسف رو بردن برادراش انداختن تو چاه و بعد کاروانی رسید و آمدن سر چاه آب بیارن یوسف آمد تو دل رو آموردنش بالا و دیدم جوونی، یعنی بچه جوون که چرس کنند چیزی بسیار بسیار زیبای فوقلاده است. برادرای یوسف آمدن که این قلام ما بوده و از ما گریخته و در رفته و تو چاه و بعد در است که وشعاق رو به سمنن بخصن دراهم معدوده و او رو گروختن ناچیزی که چند درهم درهم معدود بوده بعضی ها گفتن که 17 درهم بوده یه مقاله من نوشتم در مجله آینده چاپ درام 17 به عده زیادی شاید 100 تا شاید 150 تا مورده که این عدد هیفده به کار رفت مثل هیفده را که تماعز شبان 17 درهم همینطور و نظایر این شاید 100 موردی که من یادداشت کردم معلوم میشه از هیفده هم از اون عددی بوده که طرف توجه مردم بوده و شواهد براش زیاد و هر حال میگفتن که اوسفو به 17 درهم و یه جاییم باز خود حافظ میگه یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به ذره ناصره به سود ذره یعنی پول قلب شد تازه اون پولایی که هم پول تقلبی بوده برد. پول درست نبود که هر که کنجه قناعت به گنج دنیا داد پروخ یوسف مصری به کمترین سمنی بیا که بسحت این کارخانه کم نشود در یک نسخه نسخه مرحوم قزوینی است رونق این کارخانه و من رونق خوشتام میاد از لحاظ از لحاظ در حقیقت موزیک نسرا به نظر من رونق بهتر از بسحت است فسحت بینید گوشادگی و گوشت نخیل فسحت بینید گوشادگی سین، سین سین حالا یا که فسحت این کارخانه کم نشود به هم همچو توی یا به فسقه همچو منی یا حواست جمع بشه اینکه من بدکار باشم یا تو نیکوکار کار باشی زاهد باشی نماز بکنی هیچ تحصیلی در این کارخانه و در گوشادگی این کارخانه نداره ما اصلا کی هستیم کره زمینش کی است؟ منظومه شمسیش کی است؟ کهکشان ما اصلا چی است؟ تا بافیش باید یه خورده باید حساب دستش باشی ببین در آینه جام نقشبندی قیل میگه وضع دنیا رو در این روزگار در آینه جام ببین این آینه جام اشاره است اغلب به جام کیفوسکو جام جهاندین مم. که قبلا راجبش حرف زده و در حافظم آمده جام کیفوسکو و بعد تبدیل شده به جام جم به مناسبت تناسب لفظی جام و جم و بعد شده جام می آرفانه برای اینکه که آرفو یه حدیثی داریم اتقو فراست المؤمن و انه او یعنص رو به نور الله از فراست مؤمن از تیز روشی مؤمن حذر کنید برای که او با نور خدا بگاه اینه که میگه در آینه جام تو که با جام سر کار داری و با ارفان و با روشندینی ناشی از ارفان در آینه جام نقشپندی قیبر رو ببین که کسب به یاد ندارد چنین عجب زمانی کسی روزگاری به این شگفتی و به این عجیبی هیچ کس به یاد ندارد زمان مخفف زمانه طبیبی ز باد حوادث خیلی شروع بوده و از خیلی خراب بوده و شیرازی که خواجه میگه که خوشا شیراز و دی مثالش خداوندان نگه داره از زوالش الى آخر حالا به جایی رسیده که میگه تون باد تونباد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی نه گلش پیداست نه سمنش همه خامار سود رفته از این سموم سموم یعنی باد سمی بیش به سموم نداره سموم جمع سمه ولی سموم به معنی باد است که باد سام به تشدید میم هم میگن و مادرهای ما وقتی ما رو نفری میکردن میگفتن نه الهی باد سام ببره باد سام یعنی باد سام یعنی باد سمی یعنی همین سم از این سموم میگفتن که بادهای سمی سم هست که اگر به وضعه نه تنها گل و گیاه رو میکشه و از میبره حتی بر آدم هم که به وضعه آدم بعد از مدتی میمیره و ابن بطوته در سفرنامهش تفصیل زیادی راجع به مطلب میده که باد سمون وقتی میاد آدما میمیرن و از اجایب این است که اینا جسدشون نمیپوسه و نمیرسه یعنی در اثر باد سام میمیرن جسدشون پوسیده نمیشه این توی سفرنامه ابن بطوته هست، ترجم پارسیش هم هست میتونید ببینید آقای دکتر مبهد ترجمه کرده و بونگاه ترجمه نشه کتاب بعدش هم در دور جمهوری اسلامی شرکت سامی انتراد علمی و فرهنگی شاب کردند چند بار ببینید خیلی هم جالک از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت طرف یعنی کناره. عجب که بوی گلی هست تو رنگ یاسمان که اگه بوی گلی و رنگ آسانی باقی مونده بعد از این باد سمنی که از کنار بروستان گذاشت خیلی اسواب تحجیب به صبر کوچت تو ای دل. حافظ مبشر امیده هیچ وقت نمیخواد مردم رو در بدبختی و سختی اینا رها کنه و بگه که هیچ دیگه غیر از این نست بعد از این که همین زد به صبر کن به صبر کوچت و ای دل. که حق رها نکند چنین عزیز نگینی که ملک فارس رو میگه شیراز رو میگه یا ایران رو میگه در هر حال یه نگینی بدین عزیزی رو خداوند به دست اهریمن نمیذاره اشاره به قصه سلیمان است انگشتری او که اون دیو برد و چهل بود به جای سلیمان فرمان روایی کرد و قصهش مرد مزاج در طبح شد در این فلا. مزاج یعنی چیزی که با هم قاطی میشه چون معتقدم که آدمیزاد هم از چهار فلت چهار آمیزه ساخته شده سفرا و سودا و خون و بلغم به همین دلیل طبیعت آدم میگن مزاجش یه وقتی این چهار انصر در حال اعتدال آدم مریض نیست وقتی این چهار انصر اعتدالشون به هم میخوره یکش غلبه میکنه آدم ناخوش باشه و اینجا میگه مزاج دنیا تباه شد در این بلا این بلایی بود که مزاج ده رو به هم زد حالا آدم تبیه مزاج ده رو تباه شد در این بلا حافظ کجاست؟ فکر شهکی میگه و رای برحمنی برحمن ارز کنم روحانی هندیست روحانیان دین هندی رو دین برهمایی رو بهشون میگن برهما و اینا طبقه خاصی بودن که میگفتن که مستجابدان خیلی و بعد هم هیچ شغلی ندارن و مردم برای تبرک به اینا غذا و اینا میدن و اگرم خواهشی بکنن که کلون چیزو هم بوده باید بدن اگر ندن ممکنه که دعای بد بکنم اون برهما و این آقابت بد هر حال همزوزی که دعای بعد ممکنه بکنه دعای خوب هم ممکنه بکنه این است که میگه که فکر حکیمی یا رای برحمنی که نظر بده که وضع دنیا بهتر بشه کجاست این یعنی نیست استاد یا دو مارا در حال که نشترمی یکی سمنه. نه یکی سمنه گل یا سمن؟ یا سمنی. یکی یا سمنی کنم برحمن، والد دین ارجان هنگ، دین برحمن حکیم یعنی دکتر، حکیم هنه خیلی، حکیم یعنی فیشت حکیم یعنی فیشت، مزید. در زن طبابات هم میگرد چونش بله این بیت تو اینجا نداره البته یا می‌واره میگه، حافظ که جوون بوده اون روزی، برای که 20 سال بعد 25 سال بعد فقط چهار جای چهار پنج سال هم مبارز الدین، یه مدتی هم بعدش چیزه. شیخ ابواسحق خیلی قدیمی‌تر کشتمش حافظ جوون بوده. خود شیخ ابواسحق هم جهان جوون بوده. با تایدی، تایدی سین هاینا حادثه دیده. اینا حادثه ولی باز برمی‌کرده به با اون عرض من که به هر حال غزلای حافظ شعن نزول داره دوست که یه نفته یه هم احضار کرده بود یا خاجه رفته پلوش ملاقاتی می که هست و حتی میگه گفت کن سر سروعزت درستی نداشت بعد گفت دو اونجا رو خراب کردم سمرغند و بخاره رو آباد کنم و تو سمرغند و بخاره رو به خوال هندویت طور که خودت می‌بخشی. که میگه قربان همین قلط بخشی است که ما رو به این حال روزه و تیمور خوشش میاد از این که و حافظ رو چیز می کن. بله بله اون دفعه دوبان بود لابد به هر حال. خدا می‌دونه خدا دانات‌تری این آقای اردالا نیشیدی راجعه مشک و راجعه به آهوی خوتن اینا تغییه کردن تغییه کرده بودن و تغییه کردن یک اشکال پوچلو توش داشت ازشون خواهش که اون اصلاح کنن بعد پهش کنن بین رفقا اما فرصت بسیار کم نیستیم که ما یه جلسه بیشتر نداشته بشیم برای اینکه بعدش بنده باید برم یه کنفرانسی هست در روس آنجلس باید برم و راجب اتاره، امسا سال اتاره بای جلسات سخن رانی هایی هست بنده هم دارم این سخن رانی اونجا باید برم اونجا و در زمین ترمم تمام, تمام میشه کار دانشتار تمام میشه این از که ناچار ما یه جلسه تیمسکی بیشتر ندارم یا نمیدونم چندان میشه اگر پوستان یا سی چیز الان چند امروز؟ امروز 4 11م دیگه بعد بعدیش میشه که نیست. بعد آنو سن است میشه؟ بله که باشه بله اصلا 18 ما نیست. 16 خب دیگه امری نیست برای چی درست شد دوستان خودشون اینجا دارن میگن آقای آقا جعفری مثلا فقط می دونن ترتیب فقط بنده میگن که بیا آ سوپراش فردوس یعنی شما 16 هستید. کار برده شما چی شنونده منم 6 بله من هر روز درست هر که مردم به کار